و آله و طاهرین و منصورین و منصورین و و از ما به مناسبت بحث خبرواهی و قبل از دو خوبه داریم بحث کلمات آقایین اخباری ها رو از غرن هم و یا ده هم انصافاً در خوضه های ما مطالبی رو اضافه کردن متعرض بیش ملوطه همینطور که تا حالا واضح بوده این بحث رو به این مناسبت ایشون میکنه اما چون در خلال مطالبیشون خوائد فراغانی چه رجالی چه فهرستی چه تاریخی وجود داره ما بیشتر هدفمون اون مطالب دیگه هم هست بیشترونه از خلال ایشون وقاقا لبعضی اخباریین در فائده نهانه کتاب با عنوان عدلیزه کردن برای این که این طریقی که ما میگیم درسته نه اون طریقی که هزارات اصولی 22 تا دلیل آوردن که البته خب واضحه تکرار و مکررات و برداشم اصلا دلیل نیست حالا به هر حال ما برای احترامیشون و اگر جای نکته داشته باشه اون رو متعرض میشیم 12 همه خوندیم 13 همه اصطلاح جدید از سرز متخترت جمعی طائفه المحقق این طور نیست البته مگه مرادیشان از جمعی اطایفه نیستانی که قبل از علامه بودن راست خود این اصطلاح با اون من توضیحات کافی رو ارز کردم اهل سنت وقتی که رجال رو نرشن بعدها توانستن با این که قبل از رجال بود ارز کردم کردن فقه اهل سنده و فقه اسلامی از خود چه سالهای چرا پنجاهه مثل ما قرن اول قرن صحابه فقه از اون و شروع رجال صد و قنجاهه یعنی یه سال بعدش مواحث رجالی شروع شد اما تون تونستن بزرگان اهل سنده اما مثلا خود ابو حنیفه چون پروی میشه بود بعد از ایشان رجال شروع شد خود ابو حنیفه خیلی مواحث رجالی نداره و خودش هم اصوله در میان قلم های حدیث تضعیف شده ابو حنیفه به شدت تضعیف شد. اما بعد از ابو حنیفه خود ماله تا حد زیادی بعدها شافی که خیلی زیاد احمد ابن هم اینها فوقاهایی که بعد آمدن تونستن فقه و سر و سامان بدن با رجال ولی زا خیلی اهل سنت به مشکل بر نخوردن مطلب سیزده رو من میکنم فقط توضیح اجمال عرض کردم چند بار اما در میان ما اینه که ایشون میگی از درزمون تخت اخت جمعی افتاعفه در میان ما از قرن سوم و چهارم که حدیث و تدرین حدیث و, و شروع شدیم اصطلاح نبود تا قرن هشتم اول قرن هشتم راست میگه ایشون خب راست میگه بخواییم ما با اصطلاحی که در قرن هشتم جرد شده بخواییم فقه خودمون و حدیث و خودمون و قیاس بکنیم ما باید یعنی به باطل انصافا حرف هر ایشان درسته این مطلبی را میشون از مرحوم محقق ذکر کرده درست مطلب 14 ایشان یسرذ مو ضعف اکثر احادیث التي قد اول من نقلها من الاصول المجمع این یک اشکال خیلی معروفی است که شما با این از این اشکال در کلمات حالا ایشون و بعدها حتی اصولیین غیر اصولیین به اشکال مختلف این اشکال 14 ام ایشان مطرح شده یا دقیق 14 ام ایشان گاهی مطرح شده به عنوان این که اصلا علم رجال به درد نمیخوره به این عنوان اینکه از اشکالات علم رجاله داره مطرح شده به این عنوان که این اصطلاح تقسیم بندی علما به درد نمیخوره به همین اشکال مختلف این مسئله مطرح شده این که اینجا میگه این معروفه و اون خلاصه اشکال اینه که اون مقداری که شما مباهی رجالی دارین این به درد روایات نمیخوره خوره چون شما از اون طرف میگین حدیث صحیح باید عدل باشه امامی باشه مخصوصا کسانی که قائل هستن که اضافه بر عدل و امامی باشن به توسیق این مثل صاحب مزاره صاحب مزاره که یک نفرم او توسیق کرده باشه کافی نیست لاعقل باید دو نفر رو توضیح کن خب خیلی مشکل میشه دیگه این خیلی بله ایشون میگه بلی از سلزمون زعقل احادیس کلها همه احادیث شما بگیم زعیفه لعن نصحیح انده هم ما رواغ و لعبد و لعمامی و زادسی جمیع طبقات مخلی شما بیارن نگاه بگن در کتب رجالی خیلی کم مواردی دیگاری این کتب فیخه که گفته باشن آدله اگرم برپرد آمده توسیق آمده اما ادالت نیم آمده رضا ایشون قشکارشید که مختلف ایشون یک کلام رو تکرار کرده این کلام محل بحثه که اگر نجاشی در حق کسی گفت سرطان معناش این نیست که ایشون عادله این تو بحث رو چند بار مطرح گردن اون مدلول کلمه سره میگن ایشون اصلاح داره که سره کسی که متحدد از کسید اینه این سره گفته شده اگر نجاشی میگه سقه یعنی امامی هم هست یعنی عادل هم هست سقه و متحرزه از کذب هم هست و ظابط هم هست است... یعنی این کلمه رو که تحلیل کردن ادعا میکنن چند تا مطلب و انصافا ما باشیم و شوارده خیلی هاشته خب به معنای همون به اصطلاح هر روزه از کذبه بعد رویشون مقداری اوگردن که دعوا بعض المتاخلین انده سقه به من و علا عدل زابط اینگه تون نه ممنوع نیست بعضا این اصطلاحه به کار بردن از بیش از عدل زابط گفتن اگر نجاشی و کسی گفت سقه یعنی امامی و عدل و زابطون متحرزون انده این این کلمه سقه تحلیل میشه بینها ایشون میخواد بگم نه سقه منی رو سبب این اشتالی که ایشون برن بله. و من معلوم ان نفسقه تو جامعه ما بله کف ممکنه کافر باشه و سخه باشه و اصحاب اصطلاح جدید قدشتر توفر راوی العداله فیلزا و منزالک ضعف جمعی احادیث نا. نه ضعف جمعی احادیث در نمیاد اما مؤزم احادیث چرا چون مثلا احراض ادالت بود معناهی که ایشون در اونها نشده راست این اشکال پیش میاد و فی احداث ها در بل اصطلاع بله و کذالکون بل راوی زعیفن فی حدیث خب یک مطلب ایشان اینه پس شما با یک مشکلی برخورد میکنین که اضاله میکن. البته مثل مرمومه ایشون خودش هم میدونه سال صاحب و صاحبشون قبل از ایشون بودن سال مذاره که مبنی همین مبنی که ایشون بید. و من توضیح هست کردم چرا کسی که این معنا رو بگیره که باید توصیق شده باشه، اون موثر دروشت، توصیری نشه، حبلی نشه. این خائنایی در فقه شیعه شذوز پیدا می‌کنه. این امر طبیعیه. ما در فقه شیعه کسی که بخواد حتماً عدل و امامی و ها باشه، من توصیفش نفر کرده باشن، این قطعاً به مشکل بر خورد می‌کنه. و الان فقه مدارک اینطوره، صاحب مدارک از کسانی است که مبناش اینه فقط به خبر سریع عمل میکنه حتی به اخبار موسطقات هم مثل موسطقات مثلا ابن فرزاق که دیگه خیلی مشهوره حتی به اونها هم عمل نمیکنه کنه البته در مزارک شاید چند مورد معدود باشه آره شده از قلم ایشون افتاده ایشون به حدیث تمثل کرده که موسطق مرحومه صاحب حدایق ویشون اشکال می کنه مرموم صاحب هداره با که ظاهره از قلب ایشون در رفته به الا مدناه واضحه یعنی مدناه مرموم نداره اینه که ایشون میگن بله خب راسته فقر رو عوض میکنه این قبوله یعنی این رو باز قبول بکنیم کسی که بنابشه دنبال این اصطلاح بره فقرش عوض میشه شدود به قطبای شازه در زیاد پیدا میشه این یک مطلب یک مطلب دیگه اینی که کانون راوی ضعیفن هم فلحدیس لایس تنظیم الملثس این مطلب رو ما صادرا هم گفتیم پس یک مطلبی ایشان اینه که من حالا الان توضیحش ارث می‌کنم یکی اینکه گاهی اوقات ایشون البته ظاهرش اینطوره که کانون راوی ضعیفن هم فلحدیس لایس تنظیم الملثس تازه از طرف دیگه ممکن است یک کسی در حدیث ضعیف باشه اما فاسق نباشه بل یشت هم عامل عداله ممکن او عادل هم باشه اما ما ازالک ضعیف باشه عرض کردم بعضی از علمای اهل سنت عباراتی که نوشتن ممکن است ما یک شخصی رو روایتش رو قبول نکنیم الان روایت اون رو طرد بکنیم لكن الان که فوت کرده ممکن در اعلا درجات بهشتن هم باشه بلکه ما خبر نداریم ما میگیم چون مشکوکه قبول نمیشه ممکن در اعلا درجات ادالت هم باشه ولی اشتم اعمال عدالت فئن لعذل کثیر الصغ ضعيف فی الحدیث اگر عادل باشه و سحفی زیاد باشه ضعیف زعیفون فرحالی یه عبارتی ایشون داره این عبارت امکنه که می و سقت و وزهر غایت و مایوم که معرفت اون من احوال روا این سقه در اینجا این وساقت در اینجا سقه بودنه نه سقه به بنایی بسا... سفت و مشبه ولی وساقت و وزهر اونی که ما در کتب حدیث داریم نهایتش این, دار این که من یا ضعیفه سقرط یا ضعیفه اما اینکه عادل باشه اگر گفتن هم تا ضعیفه ممکنه عادل باشه عبارتی ایشان درسته یعنی لیکن ظاهرا ایشون کم به کمی بز فهمی دار نفراشی رو کردن شما بودیم یه فوائد رو نمونم در بایه بعضی هم یه ضعیفون بعضی هم یه ضعیفون یه بحثی دارن مثلا متأخرین که ضعیفون فالحدیث تضعیف نیست درسته این مطلب ضعیفون فالحدیث تضعیف نیست لعیفون تضعیفه اگه درباره کسی بگن ضعیفون این تضعیفه لکن ضعیفون فالحدیث تضعیف نیست شاید ایشون مثلا صاحب سوال نظر کذا کن راوی ضعیفان فالحدیث لایخسل ذمول فسخ بل یشتم مع شاید مراد صاحب سوال این بوده میخواسته به یه اعواز زعیفون فلحدیس تضعیف هست اما اثبات نمیشه که این آقا فاسبه اما باشه اما در حدیث ضعیف یعنی زبطش قوی نیست ایشون اینجور معناکی ما این رو توضیح دادیم چند بار زعیفون فلحدیس یعنی آشنایش به علم حدیث و مبانی حدیث شناختی ضعیفه و مبانی حدیثی زعیفه زعیفون فلحدیس نه به ادالت داره نه به فسخ داره نه به تضعیف داره از کردیم اینها مبانی علمی بودن ممکنی یک شخص مرجع هم باشه لیکن مبانی حدیثیش خاص باشه مثلا میگه کی مشروع فتولان ما همه میکنیم یا هر چی مشغول فتوا ده حتی نفس میگیم اوه کتاب‌های ایناها مراجعه نکن چون ایشون به همونی که در کتاب ها جواهر و اینا بوده نرم و اصلا حدیث شناسی نداره چی حدیث کار نکرده خب حداقل میتونه ممکنه مرجع باشه تو حدیث شناسی امکان نداره باشه خیلی دقت در متون احادیس نمی‌کنه چون کاری نداره به معصوم دنبال معناست اون دنبال فتواست اون دنبال, دنبال مذهبه این ضعیفان صلی الله علیه در عبارات نجاشی مراد اینه نه مراد فسخ باشه یا ادارت باشه ببینید در اون زمان مثلا یکی از مبانی که در اون زمان بود از مراسیل نقل نمی اما یکی چیزی می بود اعتماد میکن از مراسیل نقل نمی کردن بودن زیر کن خلی حدیث مبانی حدیثی ضعیفه. یا مثلا اگر به نحوه رجاجه بود نقل نمی یعنی مثلا رفت تو بازار کتاب, فرسن، فرسن کتاب حریض رو خریده یه طریقی هم به حریز داره اصلا بگه انه حریز نیم خواهد طریقا این رو نگفتن زعیفون فلحد دروغ نگفته آدم بری هم نیست ممکنه فازل ملا اصلا مرجع تغییر هم باشه مبانی ضعیفه تخف بکنه زعیفون فلحدیس که در عبارت نجاشی هست مراد اینه مثلا یعتم دار المجاهی یربی زعفا یرب المراسی به اصلاحی دقت در طرق تحمل حدیث نمیکنه. اگر به نحو وجازه است به نحوه انعنه بیاره اصلا ایشون میگه من نگفتم سمعت از حریص گفتم ان حریص ان حریص جرح میشه به نحو وجازه من تو کتاب هریز پیدا کردم میگم ان حریص من که نگفتم سمعت از حریص ان یعبون. نگفتم نگفتم حدثنی حریص خب مبنای مشهور بین علمای حدیث مثلا در نه، انعنه مسابقه است یا مساویس با اتصال اگر گفتی انحریزه نیست سمعتمه یا قررتوه هله اما به نحوه وجاده رو نمیشه شما به نحوه انعنه بیاریم بگید انحریز خب این مبانی علمی بحثیست علمی حساب داره کتاب داره. داره کجا به نحوه مثلا کجا باید بگه اخبرنی کجا میگه سمعتوه یه بول کجا میگه حد درسنی کجا میگه اجازنی یک ذره هایی به اسم حدیث شناسی در اون زمان را افتاده بود. من هم نگرشی میخواد اینو بگن که این آقا در این مبانی حدیث زعیفه. ایشون گرفته ضعیف اون فلحدیث یعنی عادل هست کثیرو سرف ضعیف اون فلحدیث یعنی سه داره زابت نیست. نه این مراد نیست این ضعیف اون فلحدیث این مراد نیست. اما اصلاً هیچ درکی از مبانی زیشان یک خواهیم داشت. هم برای عرض میکنیم و ب... نکته بعدی که در همین دلیلیشان ایشان آورده این نکته را هم ما عرض کردیم و منهونا یزهر و فساد و خیال منزن نه آن نه انجا اکن فاسمون به نبعه رو به سفر اشاره میکنه به دلیل علامه و کسانی که بعد از ایشون که تمسو که با آیات و روایات کردن ایشون عمده همون آیه نبع رو میاده اینشالا ارز خواهیم کرد در باب حدیث استدلال بلاده به وجود خبر بعضی ها معتقدن آیه نبه اقواد دلالته بعضی ها مثل آقاکوی معتقدن آیه نفر اقواد دلالت، بعضی ها هر دو رو دال, دال نمیدوند نه این رو دال با حواست صحیح نه این دلالت رو رو جید تعبدی میکن نه اون یکی اینشان خواهد ایشون ما ها به یه اندامه از راه این آیه این اصطلاح رو درست کرده مضافن الى کون دلالت ها به مفهوم ضعیف. البته ایشون مفهوم محلوم قبول نداره مفهومی که در این آیه مبارک هست دو تاست یا مفهوم شرط اینجا مفهوم شرط اصطلاحا اول مفاهیم اینطور نیست که ضعیف بشه البته اول مفاهیم غیر از الان مثل حس و اینها حس که چون سریه نه مثل به اصطلاح مفهوم وضع و مفهوم مثلا غایت و اینها مفهوم ود مفهوم چیز اقواس مفهوم شرط از نوع اینجا. یا اضباب محکوم شرط, شرط یا اضباب محکوم وست فاسقه هم در مقابل عاده ایشو میگه المختلفی حجیت اشکال میکنه که تازه محکوم محل کلامه شاید خودش قبول داشتی این تعبیر ایشان المختلفی حجیت این شاید خواهد آمد این در بحثش مفصل البته ما محکوم شرط و حجیت میدیدیم زوابطی که از خواهیم کرد. و مفهوم وست هم که اینجا خجیت نداره مثلا در مثل اینجا و لکن چیز نداره اینه آیینواره که اصولا محروم به نداره اصلا این معنی که آیینو گفتن و یک قاق خبر را مجهود الفسق حالا برپردان این درست شد ما خیلی افراد رو ادارتشون رو نمی کنیم فعن اجاب بود این هم یکی از راها که مخصوصا محروم استاد در معجم خیلی این راه رو ذکر می مثلا میگن ابن الورید این آقا رو تعدیل کرده شاید و اصحادت الاداله فعن عجابو به اصحادت الاداله از کردن بحث اصحادت الاداله در کتب فقه ما از زمان شیخ توسی مطرح شده بوده قطع کنید شیخ توسی در کتاب مقصود بحث اصحادت الاداله رو داره اصل اساس الازاله اینه که اگر ما احساس کردیم یه نفر مسلمونی به اداله بیشی میخواد احساس بکنه اصل اولی ادالات این به عبارت اخرا ببین قاعده کلی اینه که امور ادمی احتیاج به احراز نداره اساس الادم جاری میشه امور وجودی احراز میخواد ای این قاعده کلی نخ ایده از امور وجودی رو گفتن که هم اصل داریم مثل اساس الازاله با این به اصطلاح امر وجودی است احرازش که کرد با احراز مثل احراز صحت قرار اگه شکر بکنیم این امامی که ایستاده قرارتش درستیانه ادهی گفتن میتونیم حکم بکنیم به اساس صحت صحت قرار لیکن حتما ملازرتان در پتابا مشکور به این احراز صحت بکنیم یعنی که اصل احراز اجازه نمیچنی ادالت هم همینطور یک امر است. آیا این امر وجودی اصل داره اصل اولی ادارت باشه اصلا این اصل این مطلب در میان اهل سنت مطرح شده و در فقه شیعه از کتاب مقصود مطرح شده علامه داره و ظاهر مقصود البته ایشون داره عجبنا به انهو خلاف و مذهبه راسته اما ظاهر عبارت مقصود اساس حالت الاداله هست ایشون این نمی که حالا از داره این اشکاله هم مطرح مطلب اینا نمیگیر از اشارات که چون نمیخوام اون همه اشارات بشن اشاره کردم بله مرحوم استاد آی خویی هر جو که علامه اعلی تعالی توصیف میکنه که شو میگه الاهلم مبنيان علی اساطر عداله". حمله میکنم به علامه که شاید برابر از کردم سابقا در بحث های خودمون مرحوم علامه در کتب فقهیش اساس العداله را قائل نیست حالا حضرت استاد جون میگن الاهلم مبنيان علی اساطر العداله زارن جورکی باشه نیست خود مرحوم علامه حس کتونسوری ایشون صحیح ایشون مختلف هست ایشون تو مختلف اختراص بحث در کتاب قضا بر اساس العادله شهادت در باب شهادت اساسی العادله اونجا مثلا بیان کردن و قال و قال اردن اقواله علمای ما رو و خود ایشون اساس العادله را قائل نیست اشتباه نشه این یکی از جایز که ترجمه که مرحوم استاد با جلالت شانشون به عبارات الان قرجه نفرن زیاد در معجم حاصل الله مثلا علامه رو مبنیان علی اصحاب العدال اند که استاد منشه شحاله گفت نصف کلامش رو گفت نصف و گشن بگی یه شخصیز به نام احمد بن اسماییل اسماییل بن احمد سمکه الملط ماهی روزه در نصف نه اینگه روزه ایشون به استاد تاریخ, تاریخ نگار بوده بعد, بعد ایشون میگه که اقوا قبول و خبره این ظاهر آی به همین احمد بن اسماعیل ملقب به میگن از این اباظ مشهنه که ایشون به اصطلاح اساتید العدالتیه من توضیح عرض کردم در محل خودش حالا گفت میگه کلاغ ایشون تمام بکن اولا احمد بن اسماعیل راوی نیست مورخه صرفاً بحث روایت نذره بعض عجایق کار ایشونه کتاب تاریخ داره ده هزار برگه ما فکر میکنیم که شعبه شد و 10000 جلد شد، ده هزار و نه ده هزار سقف. حالا یکی داری ده هزار. از مجموعه این اثر بازگیریشان نیم سقف هم به ما نرسیده. اسم اسمشون در کتاب نجاشی و بعد علامه از نجاشی گرفته، هیچی ما ازشون اطلاع نداریم. ایشون اصلا راوی نیست. از استاد اصلا ظاهرا. حالا یا کسی بیشنش گفته نیست؟ من کسی بیشنش گفتم. که مثلا این دلایل بر اساسه عدل می نه ایشون میگه بحث تاریخی در تاریخ نشه قبول می کنیم خب تاریخی چون تو روایت داره صرف فقه داره شدت بره فقط مثلا و در کتب فقهیشون مثل مختلف تصریح دارن که اساطر لدار جاری نمیشه اما تصریح دارن ایشون وقتی تصریح داره لعله مدنین علی اساطر الادله میگه چی با تصریحشون در کتب فقهیشون بنابراین میشه یک اشکال هم به استاد که ما اهل خیلی اشکالات ملانقتی نیستیم خوب بود ایشان به ایشون آیه قرشدار شما توصیفات شیخ قبول می‌کنید <تصفح> در خودش یک قال به اساس عدل است خب برعکس ایشون در الله میگن لاله مبنیون علی اصل الا انه قال بر اساس عدل نیست که تو ریش موجوده در مخصو قال به اساس عدل است لذا دقیقاً اشکال اصلی به آیه قرشی وارد میشه شما توصیفات شیخ قبول می‌فرمایید وقتی تفسیر میکنه در مخصوص در تفسیرش تفسیر میکنه به اساس العداله اگر بخواد اشکال بشه شیخ واش اشکال میشه نه رو علامه البته این من همینجوری گفتم خیلی چون قائل به این حرفا نیستم فقط به خاطر که قالوا و بل و بعجدنا بهنه خلاف مذهبهم ملवी از من هم الا القدیم درسته این مطلب ایشان درسته معروف بین رجالی ها به اینکه اداله جاری بین, بین علمای فقهای ما و معذاله یلزه محمل حکم به ادالت المجهولین و که مج... مثلا من ارز در رجال شیف در بحث محمل صحیح 3700, رف... 3700 تا 750 تا 725 را راویر اسم برده که معذمشون هم مجهول و مهملن یعنی اصلا اسمی چیزی نکفته ایشون میگه شما یلزه محمل حکم به ادالت ها ادابازی ها اینا عدل هم و هم لایقویونه ده خب اگر در اون بده و یا اشتراط اداره به غیر فایده‌ته. یکی چه فایده‌ای از البته این اشکال 13 ام ایشان چند تا اشکاله با هم یه قرابطی شده این صورت درم اومده. حالا ما این توضیحات رو از بدم. یک اینکه اصلاحی رو که علامه به کار برده گفته صحیح و فلان و راویش عدل باشه. اینا به کرده با تَمَسُّک به آیه 90 این تَمَسُّک به آیه 90 درست نیست. به،, به طور کلی حالا ایشون آیه نبر نراشتن تمسک به ادله سمعی در باب حجه خبر درست نیست این به طور کلی حالا روایات باشه آیه نبر باشه آیه دیگه باشه ادعای اجماع باشه چون ادله سمعی رو چند جور تقریب کردن کلی حالا ما کلیش عرض میکنیم. تمسک به ادله سمعی در حجیت تعبدی خبر که شاره مقدس به ما یک طریقه شاره دارد که از طریقه آگاهان خودت خواهد بکنیم ما گسوخ پیدا میکنیم شواهد پیدا کی وسوخ پیدا میکنیم؟ بگیم نه شاره راه دیگه گفته گفته تا عادل بود تا دیگه قبول بکنی میخواد وسوخ بیاد میخواد نه این مراضحیت آب است که شاره مقدس در باب خبر یک طریقه جدیدی رو رفته دقت کنیم این مطلبی که ایشون فرمودن سال بعد سال اگه مراضح دوستی میذاره که ایندو مان این مطلب صحیب این مطلب صحیب دو پس این مطلب ایشان درست مطلب دومی که ایشان دارن اینه که یعنی این اشکال به علامه وارده راست به نظر ما چند بار سابقه هم از کرد این اشکال وارده دو در از ما ادله سمی رو قبول کردیم این تقسیم چهارگانه هم خیلی مشکله یکی صحیب و یکی حسن و یکی موسق و یکی زعی. این دیگه در نمیاد. خیلی مشکله خیلی خیلی مشکل. مگر بگی ما اینها رو به حکم عقلا اضافه کردیم که اهل سنت هم این کار کردن. تقسیم حدیث به صحیح و حسن این تو روایات چه این. و گفتیم سعیه پیش بخاری یک چیزه پیش مسلم چیز دیگری. یعنی صحیح پیش مسلم پیش بخاری ممکنه صحیح نباشه اما صحیح بخاری پیش مسلم صحیح. دیگه بقیه که جای خود داره. مثل ابن حبان و دیگران حسن هم همینطور اختلاف دارن پس یک اشکال اینه ولذا چرارن تو این بحث ها ارز مرحوم هستان مثلا اواخرشون در درسشون بحمت الله دیگه نمیگوشن سعییت و... می میگوشن هم شده اما بیشتر نظرشون معتبره بود چونشون میگفتن از الله حجیده خبر رو میگیره میشه معتبر یا نمیگیره میشه به معتبر درسته؟ <تصفيق> پس یه بحث دیگه اینه که ما برفرد ادله سمیه رو قبول بکنیم این چار قسم در مرده ایشون ننوشتن صاحب سا و صاحب پس مشکل دیگه که من میگفت که این یه در بحث خبر در طول تاریخ اسلامی شده ما به مناسبت کلامات صاحب سا اون فوائد جهر یه بحث دیگه اینه که شما چه کار میکنی؟ اینجا جای چه کار میکنی؟ این تقسیم روبانی رو این چجوری در مینه؟ از کجا در میاری؟ این تقسیم ربایی؟ این دیگه در نمیاد و لذا چپقه قائده باید شما دو تا قسمش بکنید معطمه غیر معطمه اینه که شما بیاییم این چهار قسم بکنیم انصافش از عدله سمعیه در نمیاد مگر از شواهد خارجی رو بهش اضافه بکنیم ولی از عدله سمعیه چار قسم در نمیار دو قسم صدی و این رو من چند بار عرض کردم نقشه لطیفه خیلی جالب و ظریفه مثلا عده‌ای گفتن اینکه مثلا قدما مثل صدوق در یک بابی که مستحب روازه ضعیف آورده رو ایشون قائل به تسامح در ادله سنن اینو در نظر مثلا صدوق در مرحوم صاحب حدايق اصلا یک فایده داره یک یک بحثی داره که اصولا حدیث میشه معقول صدوق یا صحیحه یا ضعیفه اینطور نیست که مثلا ضعیف باشه در باب مستحب و همینطور خیلی لطیف حرف ایشان حرف است. توی من دارالنجفی اش تو کجا شاب شده یک فایده ای داره ایشان و تنبیه لطیفی هم هست این چون از زمان چیز اول و چیز ثانی دیگه معروفه که خبره رو در باب مستحبات قبول میکنین اما گفتن در هم میبینیم حدیث ضعیفه لکن چون در مستحباته قبول کرد سال هده هم که نه اون حدیث به تصور شما ضعیفه به نظر او صحیحه این یک نقطه لطیفیه در شناخت افکار قدما یعنی اگر شما دینی یک حدیثی به حسب ظاهر ضعیفه و در باب مستحبات نه این که قدما از باب تصامح قبول کردن اشتباه نست <تصحنت> چون قدما نموانی این حدیثی رو داشتن این کسی و تضییفی داشتن من مردم پسا در علی السلام داشتن و شاهدی رو هم مرحوم صاحب داد بعد حرفی هم نیست این مال من منم هم عقیزم همینه بعد حرفی نیست رو هم رفته ایشون مثلا صلات لیله رو در فریضه داره ایشون میگه صر سلات... در صلات لیله القدر وارد شده ولی چون استاد ما ابن الورید قبول نکرد ما قبول نداریم خب صلات لیله القدر مستحب دیگه خب صلات مستحب ضعیف میگه یعنی صاحب خب این نکته لطیف این خیلی زریده این انصافا کار میخواد آیا واقعا قدما این طور بودن مثل این متاخرین مثل شهید سان یا شهید اول اگر در جایی حدیثی رو عوردن در با مستحبات ولو ما الامینونی زعیف به خاطر زعفش رو این مطلب هم روشندیست انصافا است احتمالا اونها چه در باب واجبات چه در باب مستحبات حدیث دو جور میدونسن یا صحیح یا زعیف این اصطلاح چهار تایی که علامه دروس فرموده من تذکر کردم بعد از علامه به 200 سال زیر سال از آن مجلسی یک قسمه پنجم اضافه شد توی صحیح و حسن و ضعیف و موثق قوی را بعد اضافه کردم بعدم بحثش های قوی داریم نداریم نریم به آخر کلی مکالمه بعد انصافا هم اگر ما باشیم و شواهد این مطلب رو هم نمیشه اثبات این دو تا مطلب که در خود این مطلب کتاب نیامده مطلب سه اگر ما بخوایم با این اصطلاحات علامه جلویری مشکل بکرد میکنیم این راست به راست این مشکل رو قبول داریم این مشکل رو وقت لازمش اینه که مثلا شما اگر شخص ولو او باشه اما امامی نباشه چون عدل نیست قبول نکنید اکثرن ایده از سوال ما این راه رفتن استصحاب مداره اما خیلی راه بسته این بنبستی این کار به جایی نمیذاره این یک مشکل حالا اون توصیقات ده عدله گرفته اونم یک اصلا مبانی حساب نداره که ما به مناسبت دیگه ان متعرض میشیم میشه لکن این اشکالی رو که مرحوم صاحب وسائل کرده این رو ممکن علامه و اصحاب علامه جواب بدن اینو خوب دقت کن من تمامی که این مقدمات رو خوندن و اون که مثلا ممکن است بگه آقا ولو عادل نیست فتاهی و وافوی سنی جزو نمی عادل نیست اما ما خبرش رو قبول میکنیم اگر سقه باشه و متحرزه از کذب باشه قبول می‌کنه. ایشون میگه خب میگوشون صحیح باد عدل باشه. بله صحیح باد عدل باشه. اما اینجا با اینکه صحیح نیست ما قبول این اشکال سال و وارد نیست. من می‌خوام اینو بگم. حالا نکتش چرا؟ نکتهش اینه که ما در خود و قرآن راجع به خبر فاسق نذ ردش بکنید. خوب دقت بکنید. در مورد خبر فاسق ما که آقا این باطله. انجا اكو فاسقمون بنو ان فتبينو یعنی چه فرض بکنیم بررسی بکنیم یک شخص فاسق مطلبی رو گفت بررسی بکنید اونا میگن یکی از مصادیق به وثاقت راویه درست این آقا فاسقه خوب دقت بکنیم پس این اشکال ایشون که خیلی از افراد عادل نیستن شما چرا قبول خب... مثلا فتحی و واقعیان مذهب فاصله دارن شما چرا قبول می‌کوین باید به تفسیرش شو... روشن شود یکی از اشکالات اینه که شما چرا قبول می‌کنید خب این با این تفسیری که می‌گی نمی‌سازه جواب درست نمی‌سازه اما وثاقت راوی یکی از راه‌های های نگفت نگفت فرد دو خبره امجاکم فاسقون بنو، نگم باطلو یه رو علیکم علیکمو تعبدو به مثلا فرمون این جا هکم فاسمون بنابرای این فتبینون یعنی فرمز کنیم برسی کنیم یکی از راه هستم مثلا راویه بله ما فرمز کردیم آقا فتحی یه مادم یه فقیه همین ابن فضال فسر ایاشی که شیعت در باره ایشان تو رجال کشتی نکنه میگه لم, لم لم اسمه و لم القرنم اجد فی من لقیت منن مشایخ بل اراق و قم و قراسان و نمیدونم بغداد و در جمین آفاق شیعه کسی مثل علی بن حضان فرسان خبت فتح برد محمد ابن مسعود عیاشی که قطعا شیعه ایشون میگه اصلا نیدم کسی رو به جلالت شعن ایشان در قراسان و اراق همه قم و همه جای که رفتیم ما مثل علی بن حضان فرسان نمیدونم پس بنابراین اگر خبر ابن فضال قبول میشه نه به خاطر اینکه که صحیحه به خاطر اینکه که انجا فاسمون به نبعه فقط تبین از مسادق تبینه روشن شد پس قبول موسط روی این جهته یا امامیه ممدون روی این جهته اگر اینها خیلی از صحیحه رو هم قبول میکنن عادتا روی این جهته البته این به نحوه است که ما ارز میکنیم باز خود این جوابه کشده تطول و تفصیل داره این راجع به این اصطلاح البته آی خویی که چون این اصطلاح رو قبول نکردن آخویی اصلا قابل وجود خبر سقه اصلا تعبدن بودن اغلایی بیان یعنی. خوب دقت بکنید چون مرحوم صاحب اثر اصلا مثل همسال این مبدا رو ذکر نکرده آخویی از راه آیه نبر اینها وارد نشدند ایشون نظرشون اینه که خبر ثقه چه میخواد فاسق باشه فاسد باشه کافر باشه از خبر ثقه ان در اغلا حجتون. تعبدن این امز... شاره این تعبد رو امضا کرده فخود جسون شرحن این راه هایی به آیه نبع و مفهوم و اینها وارد نشدن دقیق اون راهی که رفتن ولذا خیلی از این اشکالات از ساحب و, سا و سای خود به خود منتفی میشه ولذایشون چار قسم هم نمیگن میگن یا سقتون یقبر یا لیسه بس. بگه ما کار نداریم عادل باشه اون رو که ما داریم مگر اینکه کسی با سه باشه بحث دیگری باشه و الا انسان سقه متعارفی باشه خبرش روزی شما اشکال میکنون ممکنه که این که این سیره و ثابت نیست اشکال ما اینه که این سریه ثابت نیست علا کل حاله خوب دقیق بکنید چون مبانی مختلفه این یک مثلا دیگری که در خلال کلماتیشون آمده شما بنابراین اگر بخواهید این خصوصیات یا وساقت یا ادالت یا مثلا ممدوع بودن رو از کتب رجالی خودتون اسواس بکنید خیلی از روایات فاقد این خیلی میشن این مثلا وارد اشکال وارده از من چند بار این اشکال رو کردم انصاف قضیه اون که ما الان میراث حدیثی داریم اگر جمع بکنیم مثلا میشه صد هزار حدیث از با این کتب رجالی که الان داریم جاال ش فررس ش و فررس نی و کشی و فررسسه و قالب و فرس برقیه و جال برقی و تمام اینا رو به هم بررییم این است برای۱ تا ۲۰ هزار حد ولیش میمونونه مشکل داره. این روبال قبول بکنه. این صاد جای ما برای ارزیابی اونچه که از اهل ب ما رسیده برای 20ست درصد فوقش 20صد کهفا می برقیه که می این اگر اشکال بکنید این اشکال قوی یعنی انصافا یکی از اشکالات بسیار قوی اینه و درست هم است تتبع خارجی درست می‌کنه ولذا عرض کردم از زمان اخباری ها از بعد از علامه چون علامه این اصطلاح رو آورد راهای دیگری رفتن که احادیث زیادتری رو قبول بکنیم. و باید این کارو بکنید باید این کار رو بکنید یه هر فقهی هر حدیثی الا ابو حنیفه یک جور شافی یک جور فقه شیعه اهل بیت به این صورته پس من اصلا فقه اسماعیلی ها اسماعیلی اصلا میتونن تو رجال وارد بشن چون اصلا نزد رجالی نمذارم نمونه کتابشون داوودستانه که مرسله تو کل داوودستان چهار مرزگه دو مرزش من دیدم دو اوردیگه هم باشه که میگه سال امام معز امام زنده زمان خودش رو در زمان تالیف کتاب میشون با چند تا از اسماعیلی ها فاطمه هم دوره است این جمله المعز و خیلی هم از معز تعریف میکنه کتاب در شهر حالش ده مستقلن و الا بقیهش حدیث مرسنه الان اسماعیلی اگر بنابشه که بیاد بگه میخواد دنبال رجال بیفتر او تمام فقهشو باده بنده ما اگر هشتا درصد سن بدی بفتی او باز چون نداره حدیث مرسن راهی نداره که حدیث در بکنه در قطعه همونده پس بنابراین این،, این اشکال وارده یعنی بعد از انلامه این اشکال جلوه پیدا کرده و فوقانه ما هم فهمیده دلار از زمان فرسین شهید اول شهید ثانی لذاه میده این حدیث با این اصطلاح ضعیفه لیکن اصحاب عمل تنه شده. این من تحلیل تاریخیش را کردم از این که بعد از علامه ما میبینیم راه مثلا چقدر راه ها مرحوم وحیل بهبان در بحش رجالی مرحوم وحیل بهبان و ادهی که بعد آن مرحوم ویرداماد مرحوم فرسین خارجوی در اسفان ادهی از بزرگان رجالی مرحوم شخصی در اسفان خیلی به اینا سعی کردن یک اده از افراد رو توصیق بکنن انصافا این مشکل هست خود آی خویی ادهی راه رو آی خویی که کردن ک و این مشکل ما داریم این اگر مراد ایشان این اشکاله هست کنگاه این اشکال به رجال باره میشه. به هر حال تو رجال ما این اشکال هست و باید حل و انصافا هم نکات خاصی داره که لگه اینجا تدوین نشده مجموعهی که ما داریم در رجال مسادر اولیه با مجموعه میراس های حدیثی ما نمیسازه این باید حل بشه این باید حل بشه این اخباری هم دردشون همین بوده این صاحب وسائل میگم 22 سا دقیق ورده خلاصش همینه خلاصه حرفش اینه با اصطلاح جدید جور در نمیم راست میگیم مطلب درست این مطلب ایشان درسته این اشکال هم به رجال وارده اگر کسی بخواد به رجال این اشکاله بکنه که رجال کلی رجالی که ما مسادر قدیم دارم جو علام هم که از اونا گرفته مسادر قدیم ما مثل یک تنابیست که مثلا دو متر طولشه این چهار سد متره نمی به ترشا نمی با این تناب نمیشه به این چهار این راست این اشکال وارده و یک مقداری هم اخباری ها سعی کردن توسعه بدن همین راههایی که گفتیم یه مقدار هم اصولی ها سعی کردن اشو خیال کردم. اولی همیه یه ده تا سعی رجالی کردن مثلا در قیل به گفت فران گفتن غ و اصلا این سقطتون صدوق نهو تریبا سقطتون از مشایق صدوق هست. اینقدر از این راه درست کردن مثل یک حوزه کوسه درست رو یه مجهول و محمل اون تو بر توطیه رو, رو بیا بیرون و راست از این اشکال وارد این اشکال وارد این اشکال اخواده رو قبل از اخبار اوسیا ها هم سر شده. خب فقط اصوليون چی گفتن تا این روایت در تقریر این تقسیم علامه زغیریه اما بهش عمل نکردن. این قدمو عمل با این تقسیم نمیشه روایات چون هر کدوم این روایات زحمت زیادی اهل بیت کشیدن شوخی که نمیشه رو بی حکاکی هرجوری حدیث کنیم. با این تقسیم نمیشه احادیث اهل بیت رو ارزیابی کنیم. احادیثی که الان داریم ما. با این تقسیم نمیشه ارزیابی کنیم. باید راههای با دیگه رفته بشه. اینم که مرحوم صاحب وثائل از این رای که بده اینم درست نیست راه اخباریام درست نیست ما می‌دونیم انگار اینا یک راهی رفتن انصافا باید مجموعه شواهد کل راههاییام که مرحوم رحید بهگوهانی یا مرحوم فرسان شفیع یا دیگران یا مثل راه یا جینوری، نوری اینم که فصل ده تا 15 تا ترین جلیل برای توثیق ماعظم اونها هم درست نیست نگارون مثلا صدوق نشان طریق باشه چون کافی نیست علاوه حالا, حالا باید یک راهی رو ما پیدا بکنیم برای رسیدن به مصادیر صحیح و درست اهل به نه صحیح اصطلاحی اجمالاً که با, با علمان مهمتر اشکال همینه این اشکال با تربیتی که از سمت دیشواریه، لکن جواب هم داره رسول الله.